بسم الله الرحمن الرحیم نام خداوند بخشنده مهربان الرحمن خداوند رحمان علّم القرآن قرآن را تعلیم فرمود قال للانسان انسان را آفرید اعلمه البيان به او بیان را تعلیم کرد الشمس والقمر بحسبان خورشید و ماه بر طبق حساب منظمی میگردند والنجم والشجر سجدان و گیاه و درخت برای او سجده کنند و کنند و رفعها وضع و آسمان را برفراشت و بنهاد تراز الا تطغوا في الميزان فاضرب المیزان طغیان نکنید واقيموا الوزن بالقسط ولا تحسروا الميزان با وزن را بر اساس عدل برپا دارید و در میزان کم نگذارید وضع وضعها للانام با زمین را برای خلایق گسترد سیاب فيها و نخل داده الاتمام که در آن می‌باه و نخل ی خوشجو فات و الحبّ ذو اللّه و الرّيحان و در آن زمین دانه‌ی برگدار و گل خشبوس بر أي آلاء ربّ مات كذبان پس کدومی نعمت های پروارگاره تند را تکذیب می‌کنید؟ شما ای گروه انس و جن خلق الانسان من صلصال کلپ انسان را از گل خشکیده یه همچون سفال آفری و خلق الجن من مارج من و جن را از شعله آتش آفری فب پس کدامین نعمت های پروردگار تنزا انکار می کنید؟ رب المشرقين و رب المغربین او پروردگار دو مشرق و پروردگار دو است فبی ای اینی آلائی ربکو ما تکذیبان پس کدامین نعمت های پروردگار تنزا انکار می کنید؟ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ دو رَاءَ در کنار هم روان تا تا با هم یک جا شوند اما در میان آن دو برزخی است که بر دیگری غلبه نمی‌کند بعين آلاء پس کدامین نعمت های پروردگار صن را انکار میکنید يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. از اون دو لؤلؤ مرجان خارج می شود فب این پس کدامین نعمت هاوی فروردگارتان را انکار می کنید وله الجوار منشآت البحر كالأعلام. و برای اوز کشتی های ساخته ای که در دریا حرکت در نیاکم، کمچن کوهی هستند فبی اینی آلائی ربکما تو کذبان پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟ کل من علی آفان قرانچی روی زمین هست، ثانی می شود وَيَبْقَا وَجِعُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ تنها درست زلجلال و گرامی فربارکار است باقی میماند فَبِأَيْنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس کدامین نعمت هاوی فربارکار سنزار انکار میکنید. کنید يَسْأَلُهُ مَن بِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند از او سآل می کنند و او هر روز در شعن و کاری فبی ایمی آلائی رجکما إِنْكَارٌ پس کدام لَكُمْ ها را انکار می کنید بزودی برای حساب شما فارغ خواهیم شد. ای دو قافلی سنگین فب اینی آلائی ربکما تکذیبان پس کدامین نعمتهای پردارگار سنزار انکار می کنید یا معشر الانی والانی إن استطعتم أن تنفذوا من أخطار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلقان أي قروه جنوة إنس أجر ميتبوني أجمع خاوزي أسمن هو وزمين بكزري ولقادرني سيد مجر بوني روي فبأي آلام پس کدامین نعمت ها که پربردار شمزا انکار میکنید یوزن و شود از آتش بیدود و دودهای متراکم بر شما میفرستد و نمیپوانید از کسی یاری بطلبید دا ع آدمی وبیکوماتقدرریبا پس کدامین نقیمت س پربردار همسا این کار میکنی و ای شبقااط استعمما و آن که آسمان شگاره شود به هم چون مذاب بلگون کردد، فَبِأَيْنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس کدامین نعمتهای فردار سمزار انکار میکنید. کنید فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنْسُ از انس و جن از گناهش سوال نمی شبت. و بی ایلی آلائی ربکما تکذبان پس کدامی نعمت های فربردگار سند را انکار میکنید کنید یعرف المجرمون بسیما هم فیقض بالنواطی والاقدام بلکه مجرمان با قیافه هایشان چنافته می شوند و آنگاه از موهای پیشانی و پاهایشان گرفته شده تشانیده می شوند فَبِأَيِّ این آلائی تُكَذِّبَانِ پس کدامی نعمت های پردارگارت انرا انکار می کنید ها به این جهنم التی یکذب بها المجرمون این همان دو ذخی که مجرمان انکار می در میان آتش و آب سوزان در رفت آمدند به انی آذا پس کدامین نعمت های پروردگار شما انکار میکنید و من خوف مقام کسی که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ بهشت است فَبِأَيْنِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس کدامین نعمتهای خروادگار را انکار می کنید؟ ذواتا افنان اندباغ بهشتی دارای نعمتها و درختان پرترا است فَبِأَيْنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس کدامین نعمت های پروردگار شما انکار میکنید کنید؟ عینان تجریان در آنها دو چشم دایمان در جریان است به ای الاء ربکما تکذبان پس کدام نعمت های پروردگار شما انکار میکنید یهما ما من کل فاکهت زوجان دران دو از هر نیوه دو نو وجود دارد فبی اینی آلائی ربکما تکذبان پس کدامین نعمت های فروادگار سمزا انکار می کنید متکین فوش پرش بطاین و آمین اسم و دان. این در حال ایست که آنها با پرچه های تکشه که اثر آنها از پرچه های است و میبه های رسیده آن باغ بهشتی در دسترس است. فبی اینی ربکما تکذبان پس کدامین نعمتهای های تان را انکار می این نقاصرات صرف لم یقم انس قبلهم ولا جان در باغ های بهشتی زنانی هستند رو اندازنده چشمان و هیچ انسو جن قبلت بهشتان آنها را متن کرده است فَبِأَيِّ این رَبِّكُمَا ربکما پس کدامین نعمتهای پدرگار فنزا انکار می کنید که انهن الیاقوت والمرجان آنها همچون یاقوت و مرجان هم فبی این آلائی پس کدام نعمت های پروردگارتان را انکار میکنید إلا آیا جزای نیکی جز نیکی خواهد بود آلائی پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار میکنید و من دونه ما جنتان و غیر از آن دو بهشت دو بهشت دیگر است فبعیم آلائی ربی کما پس کدام این نعمت های پدردار سنزا الکار می کنید هر دو کاملا خرم و سرسبزن فبی اینی رَبِّكُمَا ربکو پس کدامین نعمتهای فروردگار را انکار میکنید دیه ما عینانی در آنها دو چشمه در حال فوران است فبی پس کدامین نعمتهای فروردگار را انکار میکنید ای ما فاکهتون و نقل و رمان در آنها میبه های و درخت نخل و انارر فبی اینی آلائی ربکما تکذبان پس کدامین نعمت های انکار میکنید این ان خیرات حسان و باغ باغهای بهشتی زنانی هستند نیک و خلق و زیبا فبی ای ای پس کدامین نعمتهای پدرگار تنزا انکار کار کنید؟ قصورات فی که در خیمه های بهشتی مصورند ای رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس کدامین نام تفاوی پروردگار تن را انکار میکنید؟ لَمْ يَقُمْ قَبْلَهُمْ ولا جان که هیچ انس و جن قبلا آنها را مسن نکرده. پس کدامین رَبِّكُمَا های پروردگار تن را الکار می کنید؟ این در حالیست که این بهشتیان بر تخت های تکیزدند که با بهترین و زیباترین پارچه های تَذِى أَيَّ آلَاءَ وَبْدُكُمَا تَكذِّبَانِ پس کدامین نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ الْجَلَالِ و زوال نافذ است نام پروردگار صاحب جلال و جمال تو.